بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد ده من دارسة دارسة السوري يوسف ويبس سيظوم فارمدي الله جل شأنه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وراودته التي هو في بيتها هو يوسف بيتها خنيون زن اونزن کیه اونزن که تقاضای فاحشه را از یوسف داره شخص نیست الله درشو بسته الله قرار نیست که کسی را رسوا بکنه چون مهم نیست کی بوده کی نبوده مهم درس صبرتی هست که در این قصه هست مهم نیست که اون زن کی بوده اسمش چی بوده خاطر همین الله اسمشو نمیاره و قضیه ستر را باید اینجا یاد بگیریم از الله جل شانو. الله میخواد بنده رو ستر بکنه اون بنده که خطا کار اشتباه به خاطر همینه که الله در قضیه فحشا یا عمل الزنا سخت گرفته که باید 4 تا شاهد باشه اگر 6 تا شاهد عادل ترین اشخاص دنیا هم بخوان باشن گواه باشن زنا رو ببینن حق ندارن به کسی بگن اگر بگن باید شلاق بخورن باید اون 4 نفر در یک آن در یک لحظه نه اینکه مثلا یکی امروز دی یکی فردا دی یکی ده دقیقه قبل و 20 دقیقه نه در آن واحد در هیئتی واحد 4 نفر بخاطر همین 1400 ساله از وقتی که بحث زنا و چهار تا شاهد و اینا نازل شده 1400 ساله که رخ نداده این مطلب که چهار نفر بیان جواه باشن در یک جا و این عمل فحش رو ببینن، نیست، رخ نداده. خدا سخت گرفت. در توبه رو باز گذاشته. زن زناکار میاد نزد رسول اساس، اعتراف میکنه: یا رسول الله، دوچار فحشا شدم، دوچار زنا شدم. روشو چرخ میده رسول اساس. قبله توبهت، اخوت و ستتک. الله تورو میبخشه. باز برای دیگر از این ور میاد. باز هم میتوره. روشو چرخ میده باز برای دیگر رسول باز هم میاد، سوال میکنه. الله میخواد بنده را ستر کنه باید بنده خودش رو ستر رو کنه بین خودش و الله جل شانو توبه بکنه توبه نسوح بکنه اینجا هست که ستر یک مسئله خیلی مهمیه باید بندگان الله ستر بشن خوصا اون عملی که در خلوت انجام شده هیچ کسی جز الله و رو ندیده خودمون را ستر بکنیم دیگران را ستر بکنیم دنبال رسواه سازی و رسواه کردن میشه؟ اصفات منافقین چی؟ اگه خاص ما فجر در خصومت فجور میکنه. کل اون سوابق دوستی و رفاقتی که با هم داشتن، ده سال، بیس سال با هم دیگه رفیق بودن، میاد دو به همزنی میکنه، میاد دعوا راه میندازه و این با میره مثلا فل پیش فلانی با عموت اینطوری گفت، با پدرت اینطوری گفت، با مادرت اینطوری گفت، چنان کرد، چنین گفت، چنان حرفا را میزد میاد به قول خودمون کل پتهاشو رو آب میندازه. رسواه‌سازی کار درستی نیست. رسواه سازی کار درستی نیست در خش بر رو نگه داریم بدونیم این قاعده که سلاس سلم میگه نشانه منافق چهار تاست از جمله نشانهاش در خسومت یعنی در دعوا فجور میکنه سوابق پیشینه شخص را میاد رو میکنه فجور میکنه بهش دروغ میبنده یا سوابق که داشته را میاد رو میکنه اشتباس باید مواظب باشیم که این صفت نفاق در ما نیاد خصوصا در خود خودتو کنترل کن و راوده تلتی هو فی بیتا نگ تک تک این کلمات خودش یک دلالاتی داره راوده تو مراوده کردن مقدمی چینی کردن با حرف و گفتار و عمل مراوده کردن در خاص تقاضا همراه با شیرین زبانی همراه با بوی خوش همراه با لباس زیبا همراه با چچچه و بهبهه و خنده این مقدمه چینی و راوادت و مراوده میکنه میاد با فعل و رفتار و گفتار با خود شیرینی کردن جلوی یوسف یوسف را اغوا بکنه اقرا بکنه به طرف خودش بکشه که عمل فاحشه را باش انجام بده زنه مکر داره باید انسان برحذر باشه از مکر داره الله بهمون اینجا درس میده که چطور خودمو رو در امان بشموریم از مکر زنان خوسن مغازه داره خوصا اونای که تعاملشون بازنه وقتی که میان چهچهه و بهبهه را مندازن و خنده و لبخند و شوخی و مسخره، اونجا هست به الله پناه ببر زعیف تو مرد در مقابل اون زن یوسف احساس زعف میکنه قال معاذ الله به الله پناه میبره چه در این آیه خواهد اومد همیشه احساس زعف در خودت داشته باشه احساس قوت نداشته باش بگو من زعیفم بار الله تو مرا قوی ساز تو مرا نجات ده پناهم توی بار الله حسفت نیزن این مسئله داره الله جل شنه به همون یاد میده که شما ضعیفید ای بندگان الله و راودت هلتی هو فی بیتی ها خونه خودشه قصر خودشه یوسف را دعوت نکرده به خانه خودش یوسف در غربته نگاه کنید چه جوی مهیا شده برای یوسف انسان در شهر خودش آبروی خودشو حفظ میکنه ولی جایی که غریبه دیگه کسی رو نمیشناسه هر کاری انجام میده یوسف نگاه بکنیم غریبه بعدم خونه و خونه منزل کیه؟ خود اون زنه هست بعدم میگه وغلقت الابواب درها هم بسته چون یک در نبودی خونه کوچیکی نبود خونه بزرگی بود درها رو هم بسته چندین در داشته اون قصر و خونه و منزل محل ها هم نیست یوسف اینجا. کل ما اگر جوان با او را بسنجین اینجا جب مهیا شده برای یوسف غربتش گفتی زنه که خودش رو مهیا کرده. بعدم عزت اون زن بعدم اون مقامی که اگر بخواد مثلا اون رغبت زن را بر بکنه خب جایگاه خاصی برخوردار میشه تخره زن همه اون وزیره. اینها همه مقدم چینی هایی بود که مهیا شده بود برای یوسف علیه السلام. و قالت هی تلک. اینجا الان خودش آماده ساخته و با اون شیرین زبانی و با اون چهجه و بهبهه یوسف را به طرف خودش دعوت میکنه یوسف بیا من الان مال تو هم الان اینجا این زن در خفا بود گفت من مال تو هم خودش رو زیبا ساخته بودی خوشی زده الان خواهر مسلمان خودمون، دختر مسلمان خودمون تو کوچه و خیابون میاد میگه بفرما من مال تو هم عت زده. رسول الله صلی الله علیه و سلام میفرمایند زنی نیست که عت بزنه، مردی است که نارش رد بشه مگر زنا پاش نوشته بشه. چرا؟ چون مرد ضعیفه، هوس میکنه. مرد با یاد و نام زن هوس میکنه. دیگه چه برسه با ذکر جمالش و زیباییش اینجا هم الله از زنا و مقدماتش ما رو هشدار میده ای مردان حواستون جمع باشه زن و هر چیزی که متعلقه با اونه شما رو در هوس میندازه مواظب باشید بر حذر باشید جای انسان با قصه است با داستان جای با شعره با وصف زن انسان تحریک میشه بخاطر همین الله نگفت لا تزنو گفت ولا تقرب الزنا نزدیک زنا نشید جای این چیزها یعنی این وشینی انسان را نزدیک میکنه به عمل فاحشه انسان رو تحریک می کنه باید این جلوه این تحریکات را گرفت این شهوتبازی ها را گرفت رسول الله صلی الله علیه و سلم، روزی مجموعه از کلاغا را می بینن یکی از اون کلاغا منقارش قرمز رنگ و پاش قرمز رنگ. گفت که از زنا مثل این وارد بهش میشن شن صحابه تعجب کرد چرا؟ گفت که یعنی يعني... یک بیت شعر اضافه بر این اینها هم سوار مرکبی میشن سوار حالا میخواد ماشین طور هر چیز زینهایی که رسول تشبیه میکنن سوار زینهای مرکبی که پر از زین چندین نفر زن میان کنار مسجدن پیاده میشن برای نماز از این زنان همه این زنان جهنم میان الا مثل یک پرنده‌ای که یک پاشو من قارش قرمز این همه زن همه جهنمی الا یکی چیه وسبشون یا رسول الله چیه اینا چیکار کردن مگه رسول الله صلی الله و سلم میفرما اینها با آرایش و زیبایی و تجمل اومدن به مسجد به مسجدم اومدن آه. نه که مثلا برن بازاری به مسجدم اومدن برای عبادت هم اومدن رسول الله صلی الله علیه و آله میگه لعنهن فانهن ملعونا. لعنتشون بکنید اون زنا زن لباس پوشیدن مثل که نپوشیدن دست از یه بر بیرونن موها از بر بیرونه پاها از یبر بیرونه لباس تنگه چادر شفافه چه حجابیه مردم هوس میکنه اینجا اگر این زن در خلوتگاه گفت هی تلات دختران و زنان و خواهران ما در کوچه و خیابان به ما میگن هی تلکی دعوت به زنوان میده حداقل اونون حواسی که در ذهن ما ایجاد میکنن مرد ضعیفه مگر نفس انسان دست خودشه نفس انسان که دست خودش نیست شیطانه انسان را در وسوسه بس میندازه بخاطر همین انسان باید حواسش جمع باشه از این مقدمه چینی های شیطان مقدمه چینی های شیطان زیاد در موبایل باشه از اون برنامه از اون صفحات مجازی اون تلویزیونت بهت میگه هی تلک اون زنان فاحشه ای که تو تلویزیونن تو صفحات مجازی ان چه میخواد فیسبوک باشه چه میخواد توییتر باشه چه میخواد نمیدونم اینستاگرام باشه هر چیزی میخواد باشه اینجا الله داره هوشدار بهمون میده اونهایی که هی تلک بهت میگن زیادن از اون دخترها و اون زنای فاحشه قال مع الله یاد بگیر اینها که زیادن موقفه تو با چی باشه بدون که هیچ کس نمیتونه تو رو نجات بده پناه بده جز الله از یوسف یاد بگیر اونها برای من و شما الگو هستن یوسف نگفت یا فلانی مدد یا فلانی نه ولی نه پیغمبری نه پدری هیچ کسی صدا نزد جز الله تا معاذ الله توحید یاد بگیر یکتا پرستی یاد بگیر که در دعاهایت کی را صدا بزنیم اونها الگوی من ما باید چنان باشیم که بودن بعدم تربیت را نگاه بکنیم در اون موقف شهبت واقع شده غریزه هم داره جوانم هست ولما بلغ اشد دهو بچه بود فروختنش اینجا الان به سن بلوغ رسیده جوانی شده بعد از اینکه نوجوان بود شهوات داره برای خودش الان این مقدمات هم براش فراهمه ولی الله را فراموش نکرده در اون خلوت فرسول صلی الله علیه وسلم یاد میکنه از اون هفت نفری که در زیر سایه الهی در روز قیامت یکی از اونها جوانی که زنی او را دعوت میکنه جوانی که موبایله جوانی که تلویزیونه جوانی که دخترتو که چه خیوانه میگه هی تلک بهش چشمشو میبنده قظه بصر میکنه سرپایین میندازه میگه بار الله ما نجات بده اینها مستحقن این نوع که این طوری تربیت شدن تربیتشون ایمانیه الله را در خلوتگاهشون بیاد دارن مراقب خودشون میدونن یوسف این چینی تربیتی داشت باید بچه های خودمون را این تربیت بکنیم که الله را مراقب خودشون بپندارن هر جا میرن الله را ناظر را مراقب خودشون بدونن قال معاذ الله پس به الله یک تا فقط پناه برد کسی دیگر را صدا نزد بارالها خودت منو پناه بده اگر تو منو پناه ندی هیچ پناهی ندارم این نهایت افتقار عجز نیاز بارالها به تو پناه میبرم من عاجزم من محتاج به درگاه تب ضعف خودمون رو به الله اقرار بکنیم بارالها ما ضعیفیم خودت مراقبی کن تو پناه ما باش ان هو احسن مثوی پناه برد به الله اون چیزی که الان مانع شده از اینکه دعوت اون زن رو سجابت بکنه یاد داشتن نعمت های الهیه تربیت توحیدی، این همه نعمت الله به هم داده، از اون در پیغمبر از اون تربیت ایمانی از اون جسم، بعد بیام الله را از خودم ناراض بکنم عمل فاحشه انجام بدم، کاری بکنم که الله از من ناراض باشه این نهورا بی، احسن مثواي. پروردگارم بر من مننت گذاشته، این همه نعمت بر من فوزونی داشته، بعد بیام این کار را انجام بدم حالا بعضیا گفتن بعد از مفصلین گفتن اینجا منظورش سیدشه از ربی چون در لغت عرب رب معنای سید میاد بعضیا گفتن اینجا منظور اینه که یوسف میگه من بیام با تو زنا بکنم و شوهرت یعنی اون صاحب من اینقدر خوبی در حق من داشته بعد من بیام خیانت به همسرش بکنم خیانت به ناموسش بکنم خب بیاد داره یعنی نعمت ها را زیر پا نمیذاره خوبی ها را فراموش نمیکنه این یک نوع تربیته که ما خوبی ها رو به چش داشته باشیم چون بعضی سرشت ها عوض میشن جامعه و محیط ما رو عوض میکنه ببینید سرشت شخص میشه بدبینی نسبت به همه چیز و همه کس بدبینه نخوشی میبینه نه نعمت میبینه حاضرم نیست ده سال 20 سال بعد قبر بگرده نه مرغ نیست مرغ تو دو نمیدونم مرغ فروشی نیست نه گوش نیست گوش خراب شده سبحان الله صحابه نظر رسول الله الله عليه و سلام گفتگان گرونی شده رسول خشم میشه ناراحت میشه يقول يا رسول بيها قيمت تاينكو هاد داقل انها قروم فروشي ناكونا نورا حد مش رسولتهم يقول ان الله هو المسعر الله هست قيمت تاين موكن قيمتها دا سمنا ما مخلوقي اي چيز مش مشه چیز میشه الله هست که به یکی توانایی خرید رو میده به یکی توانایی خرید رو نمیده اینها رو الله تعیین میکنه روزی دست الله است نباید انسان کفران نعمت بکنه به اندازه‌ای که داره به اندازه‌ای که الله در توانش گذاشته شکران الله رو به جا بیاره انه لا یفلح الظالمون الله و که ستم بکنن ظلمی بکنن و سگارش رو نمیکنه نمیکنه لا یفلح الظالم یعنی دست از با خطا بکنم منم بدبخت میشم بیچاره میشم خار میشم راقب داره به مسئله قبلی ما گفتیم علم و شرفش و مكانتش و مقامش علم به انسان عزت میده اون عالم از اون عزت محروم میشه زمانی که پاش به اینه ان لا یفلحو الظالمون عالم اگر اشتباه کرد اشتباه عالم مثل یک فرد عادی نیست دودش تو چشم تمامی افراد جامعه میره تخریب میشه به خاطر همین از خصلت هایی که باید علما داشته باشن باید زهد و برع داشته باشه چشمشون به مال مردم نباشه دست بردی به مال مردم نه دستشو تو جیب مردم نباشه این صفات در پیامبران بود طب من لا یسالکم اجرا وهم معتدون اسکسان پیری بگونه که اجر ازتون نمیخوان عالم باید دور از مسائل مادی مردم باشه چون اگر عالم پاش لغزی در مسائل دنیوی اومد شریک مردم شد رسول الله صلی الله علیه و در امور مادی چی گفت انتم اعلا امور دنیا کو شما بهتر از دنیا خودتون میدونید من کاری به دنیا شما ندارم عالم وقتی که اومد تو مسائل دنیاوی دخالت کرد اونجا هست که از چشم دل میفته خصوصا ما میبینیم حالا چه قضیه انتخابات باشه دوتا تا عالم میبینیم به جنگ هم دیگه میرن این یکی اینو میخواد اون یکی دیگری رو میخواد کی سبب شده که تخریب بشن خودشون من خودم, هم خودم تخریب باشم پام یک خطا از من جامعه رو نابود میکنه یک فتوا از من جامعه رو نابود میکنه من اینجا بیام بگم به مردم موسیقی حلال فردا اورگ و ارکستر نمیدونم ترانه و رقاصه و مشروب و اینا دیگه بیار تا شب و نماز صبح بیا چوبشو خودت بخور و زن بچهت غیر از اینه مگه دهن تر کنم فقط بس بگین که موسیقی حلاله سینه‌چاک میکنم برات دل خیلی خوش میشه نه دل خود دل جامعه خوش میشه درهای فحشا و منکر براشون باز کردی باید در همین لغزش من مثل لغزش این و اون نیست من پایم لغزید گرون پایم تموم میشه جامعه رو به فساد میکشنم با یک فتوا با یک حرف ولقد همت بهی و هم بها لولا انراع برهان ربه ولقد همت به فرق میکنه و هم بیها همت زنه قصد میکنه با زیبایی و با اون آرایش و با اون جوی که فرام ساخته و درها رو بسته مجرد یک خاطره نبود یه چیزی که تو دلش بیاد نبود نه اومد خودش آماده کرد سینه رو چاک کرده برای فحشا ولی یوسف آیا رغبتی از خودش نشون میده این رغبتی که هست ای که الان اون زنه شده آیا یوسف هم این اینجوری ای داشته بعضی از مفسرین گفتن بلی الله داره میگه و هم مبیه حداقل به عنوان یک خاطره بوده درسته که هم به معنای یک خاطره و یک وسوسه قلبی میاد و یک به معنای قصد میاد معنای قصد, قصد انجام کار اینجا همه اولی عزیمت همه اون و گفتن همه یوسف فقط مجرد یک خاطره و یک میل قلبی بود این میل فقط بود مال اون نه عمل بود ولی که ادبیات لغت عرب این میگه که حتی اون میل قلبی هم یوسف ازش بری هست ساحتش جنابش ازش پاکه یعنی اون جایگاه مقامی که درش یوسف واقعه حتی اون میل قلبی هم درش نیست چطور؟ این جمله‌ای که اینجا هست و همه بها لولا ان را برهان ربه ربیع معکوس بکنیم ترجمه‌اش به لغت خودمون اگر سعید تو این مسجد نبود من حسن را می‌زدم سوال من حسن را زدم حسن را نزدم چون سعید اینجاست اگر سعید نمیبود من حسن را می‌زدم حالا جمله رو برعکس کن حسن را می‌زدم اگر سعید اینجا نبود زدم حسن رو؟ حسن را نزدم هم بها لولا اگر برهان الهی نبود هم میکرد حالا این جمله‌ها رو برعکس بکنید عقب و جلو بیارید هم میکرد اگر برهان الهی نمی‌بود چون برهان الهی وجود داره پس همی از یوسف صورت نگیره چون آقای سعید اینجا هست من حسن رو نزدم حالا بعضی آمدن سناد کردم به تورات و انجیل نمیدونم یعقوب اومده در چهره جبرئیل و فلان و. یا یا هم میکرد بچه اونجا بوده و فریاد میزنه هیچ اساسی دلیلی مدرکی بر این حرفانیست. اون برهانی که اون برهانی که اینجا یوسف رو نجات میده اون ایمان الهیه اون وحی الهیه برهانی از سوی الله وحی الهی یوسف را نجات میده اگر اون برهانه نبود یوسف پاش میلغزید چون برهانه بود اون کتک صورت نگرفت سعید کتک نخورد یوسف در هم نیفتاد در میل نیفتاد توحید ناگرید مقام ایمان را شما در نظر بگیرید ایمان حتی تو را از میل و رغبت بفحشا هم نجات میده مقام ایمان که الله میگه الله الذين و منكم الذين اوتوا العلم درجات علم با اون ایمان ساخته میشه و با اون ایمانت الله تورا بالا میبره جایگاه یوسف داره بالا میره شرفش مقامش داره بالا میره در امتحانات داره پیروز در میاد اگر میخوای پیروز بشی موفق بشی فستگار بشی باید از امتحانات خوب بر بیای پس ایمانه که اینجا یوسف را نجات میده بخاطر همین الله گفت كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء این ما یوسف را با اون ایمان و اون علم که الله گفت و لما بلغ اشده اتیناه حکما و علما با اون حکم و حکمت الهی نبووتش و با اون علمی که الله بهش داده بود و با اون ایمانی که بهش داده بود این هر نوع بدی را از یوسف دور نگه داشت و هر نوع فحشای فحشا فحشاء فقط زنا نیست به خاطر همین الله گفت سو فحش و بدی و فحشا فحشا به طور مطلق فحشا گاه چه شرانی میشه فحشا نه که شرانی هم فحشا دختر دختربازی هم فحشا نگاه نامحرم هم فحشا حرف حرف زن و اون میول جنسی حرفای جنسی زدن جوکای جنسی تعریف کردن هم. میشه فحشا به خاطر همین در حج و با روزه ممنوع حاجی ممنوع روزدار از این که, نهی که فقط فحش نده، دشنام نده، حتی اسم زن و مقدمات اون چیزی که انسان را مصدعی بر جماع همسری که حلاله، ولی چون الان با زبان روزه بر تو حرامه، حق نداری که برای خود مقدمه چیدی بکنی و اسم زن بیاری و چون بر تو حرامه الان با زبان روزه، چون در حج بر تو حرامه، اجازه نداری حتی با همسرت، همسرتو ببوسی در حج، حلالته ولی اجازه نداری، چرا؟ چون شاید این مقدمه بشه بر اون جماعی که حرامه بر تو در اون زمان جوانی میاد نظر اساس و میگه یا رسول الله همسر ما ببوسم با زبان روزه گفت که نه چرا نه پیره مرد اومد گفت که نه مشکلی نیست صحابه فهمیدن که اینجا چون اون جوان شاید اون میلی لغبت براش پیش بیاد و در اون عمل مباحی که در وقت حرام شاید ازش واقع بشه کفت که نه انجام نده ولی اون پیرمرد دیگه نه شهوتی نداره که اینجا اون میلی رغبته درش به وجود میاد با زبان روزه گفت که نه مشکلی نیست پس اینجا ما باید فقه و فهم داشته باشیم اونهایی که جوانن زبان خودشون و زبان روزشون رو نگه دارن اون زبان روزشون درسته که شاید برشون حلاله اون چیز ولی که شاید تبدیل به فحشا بشه اون چیزی که برش حرامه با مرتکب حرامی بشه. اینه من عبادنا المخلصین دو تا قرآت داریم مخلصین و مخلصین و اسم فاعل و اسم مفعول هر دو تا شده مخلصه یعنی الله برای خودش خالص قرار داده یعنی الله یوسف را انتخاب کرده خالص کرده و مخلصین اخلاص خود یوسف در طاعتش در عبادتش در یگانگیش نسبت به الله یوسف شخص مخلصی بود اخلاص داشت نسبت به الله جل شانه انه من عبادنا المخلصین هر دوت قرارت صحیحه و اینجا شرفی هست که الله به یوسف میده هم نسبت به اخلاصش هم نسبت به عبودیت و بندگیش عبادنا بنده من بود بنده هوا و حوثش نبود بنده دنیا نبود بنده شیطان نبود چون خیلی ها هستن بنده الله نیستن در زندگیشون بلکه بنده هوای نفسشونن تا به نبی اکرم صلی الله, صل الله علیه و آله فرمویان تعس عبد الدرهم والدنار بعضیا برده مالند بنده مالند مال بهشون بدی ازت راضین مال بهشون ندی دستت ناراضن هم غمشو فقط در دنیا ماله که چگونه پول و مال دنیا به دست بیارن اسیر مالند وابسته به مالند این از باب مذمت رسول الله صلی الله علیه و آله در یاد میگرنه تعس عبد الدرهم والدنار یوسف از بندگان مخلص ما بود مخلص بود در عبادت مخلص بود در طاعتش همونطور که ابلیس وعده گذاشته بود بر خودش که اغوا بکنه فریب بده بندگانش بعد میگه که الا من هم المخلصین مگر اونایی که مخلصا من نمیتونم اغوا میکنم گمران میکنم مگر مخلصین یوسف هم از کسانی بود که شیطان نتونست اغواش بکنه چون مخلص بود چون عملش خالصانه برای الله بود یعنی رفتار شما نگاه بکنید قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي نعمتای الهی ربیات داره اهل ایمان اهل دین اونهایی که اهل دینن الله این چینی نجات درس بگیرید دیندار شدید خودتا نجات میابید بچه ات فرزند دیندار شد تو هستی که سبب نجات اونها شدید بدونید که فلاح و رستگاری شما در دینداریه این یکی از درسهای این قصه هست این داستانی که بهترین قصه های قرآنی است. پس راه نجاتمون دینداری و علمی هست که این دینداری را به همون یاد میده مثلا این چیزی که الان ما داریم میخونیم درس و عبرتی که از قصه یوسف ما میگیریم بحثا بیشتر از اینه به همین قد اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمدین و علی محمد